بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد <تصفيق> ونشانه هي الزياد رخون دين دارس هي الزياد دارئين نشانها حاس أزم ليفار مدير رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة وقطع الأرحام وشهادة الزور وكتمان شهادة الحاق وظهور القلم بین شما و قیامت یک مسائل رخ میده بعضی هاشون از باب خبره و بعضی هاشون مزمومه از باب مزمت یاد میکنه اولیش تسلیمون خاص انسان کسی که میشناس سلام بهش میکنه کسی که نمیشناس سلام بهش نمیکنه این اولین امر مزموم بعد و فشو و تجاره بحث افشاشدن تجارت این که همه آغشته بشن به تجارت همه بشن مجبول دنیا کسی دیگه اه اهمیت به مساجد قائل نشه اهمیت به عبادت و طاعت قائل نشه اهمیت به علم قائل نشه حتی توعین المرأة زوجها على تجارت تجایی که این قد براشون تجارت و کسب و کاسبی و, و دنیا مهمه که زن با شوهرش همکاری میکنه در تجارت و قطع الارحم ارحم قط میشه دیگه چیزی به اسم سلی رحم نیست شاید ایدی مناسباتی عروسی باشه هم دیگر رو ببینن و شهادت الزور و گواه زور و دروغ اشخاص میان به دروغ قسم میخورن بر سر زمینی بر سر اینکه حق کسی رو بخورن و کتمان و شهادت الحق شهادت حق میدونن که حق فلانی پایمال شده نمیان به پاش بیسن و ظهور و القلم آخرش قلم زیاد میشه هر کسی مینیویسه نوشتن خوبه خوب انسان بنویسه ولی جا داره و وقت داره هر کسی اهلیت نوشتر رو نداره و هر جا انسان نمی نویسه من گفتم با بارها تذکر دادم و بازم میگم می بینید موبال دست طرفه توی گروه کسی رو نمی شناسه می نویسه نتحقیق میکنه نمیره میخونه خسن طلاب عالی از باب تذکر میگم هر چیزی میشنوید وارد بحث و مجادله نشید به مجرد اینکه با معلومات شما با اون چیزی که یاد گرفتید تناقض داره یکم در کتاب خونه برید باز بکنید باور بکنید من تا نخونم اینجا نمیام صحبت بکنم منم در کتاب باز میکنم باد بریم بگردیم چرا علما نوشتن زحمت کشیدن دنبال اسناد بودن صحیح و از غیر صحیح مدام مشخص کردن تا اینکه انسان حرفی که میزنه حرف مستقی می باشه، از هوا و حوست نباشه جاهای هوای نفس شخص فقط نشسته و از هوای نفسش از اون میل و اراده قلبی خودش یک باور شخصی خودش حالا این باور از مدرس، توی مدرسه با خودش حمل کرده از این در اون در شنیده یا نه وساوس شیطانه و اینه شیاطینه لیوحونه الی اولیائی شیاطین میکنن بر ما جایی وحی شیطانه بدون تحقیق بدون اینکه بریم نگاه بکنیم صحت و سخم یک مسئله بدون اینکه بریم مستر اون قول رو بهش نگاه بکنیم یا به دروغ قولی را به عالم نسبت نق فلان عالم اینجوری حرفی زده شاید اون حرفو نزده باشه اسباب تخمین دیگه نمیگه شاید ذهن خودش را به قول معروف متهم بکنه که شاید من اشتباه میکنم نه یا حدیثی را همینطوری میگه اینها خوب نیست خوشایند نیست انسان باید درش دقت بکنه حدیث دیگری داریم از رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند ان من اشراط الساعة ان یفیض المال و مال زیاد میشه و القلم وتفش تفشو التجاره معنای حدیث قبلی و حدیث دیگری از ابو هریره رادیا الله عنه که رسول لا تقوم الساعه حتى تظهر الفتن و یكثر الكذب قیامت برپا نمیشه تا اینکه فتنه ها زیاد بشن فتنها ها اون چیزایی که انسان رو مشغول میکنه از خدا غافل میکنه زیاده چه چیز ما غافل کرده از نمازهای فرد مردم رو غافل کرده جس فتنه دنیاست جس تلویزیون و این برنامه به اون برنامه چه فرقی بین ما هست شما دقت بکنید بین ما و کفار چه فرقی بین ما و اونها هست فقط در الان فقط نماز نمازمونو گرفتیم همین نمازو خیلی ها ندارن خیلی ها همین نمازو ندارن بین الرجل و بین شرک ترک و صلاح. بین مشرک و بین مؤمن ترک نماز. خب میبینیم وارد بازار میشید همه هم میدونید اهل سنتن از هزار نفرشون شاید ستنشون مسجد نیان چی چیز اونها را مانع کرده بین بی که بیان به مسجد و سر به سجده خدا بزارن و سر به بندگیش بزارن. غیر از حب دنیا، غیر از بندگی به دنیا، غیر از پرستش مال، تح صحب درهمی و دینار. اصلا به جایی که بنده خدا بشه شده، بنده مال دنیا، بنده سروت. الان میاد اشترا در نشانه خیامت بازم به این مسئله اشاره خواهد شد. و تتقارب الاسواق، دروغ زیاد میشه، دروغ دیگه عادی شده. هر کسی برای هر مسئله قسم میخوره و راحت دروغ هم و قسم به دروغ میخوره و تتقارب الاسواق بازارها به هم نزدیک میشن هر جا میری هر خونه میری یک مغازه برای خودش باز کرده و یتقارب الزمان زمان به هم دیگه نزدیک میشه دو ماه گذشت از سال تحصیلی سان نمیدونه کی وقتش سفری شد شما الان هم شب دقت بکنید یهو میبینید میرید شام میخورید میخوای بخوابی ساعت 12 نماز صبح الله الله بیدار بشید با ساعت و با زنگ و با صد تا وسایل گذاشتیم که یا کسی بیاد ما رو بیدار بکنه یا با زنگ ساعت خوابمون شده چنگین نمی‌دینید صبحم بیدار شد ظهر شد زو دوباره بازم استراحت و خواب و هی داره زمان میره با کم با به معروف با اندکترین و کمترین برکت که توی اون وقت باشه که انسان مثبتی ببره از اون وقتش وقتش میبینی یا با موبایله وقتش یا می‌بینید برای حرف زدن و چرت و پرت گفتنه يأسر كلاس خوابه أهمية بإله كنمي ده مطالعام كنمي كنه ويتقارب الزمان ويكثر الهاج قيرا وما الحرج يا رسول قال القتل حرجا مزياد مش دوري حرج قتلا مزياد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرميان فوالله فوالله قسمه از رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ترسس فقر دارم لش ما فقير بشي و اینکه فقر شما را در فتنه بیاندازه ولیکن اخشا علیکم ان تبسط علیکم دنیا می که شما غنی بشید در دنیا براتم باز بشه کما بسطت علمن کان قبلكم همونطور که برای امتای پیشین شما باز شد درهای دنیا فتنافسوها کما تنافسوها و تلهکم کما الهتهم در روایت و تلهککم کما اهلکتهم تنافس بکنید بر مال دنیا سبقت بگیرید این, این ماشین خرید من اون ماشین می‌خرم این خونه و اون خونه و تنافس و فی ذلک تنافس المتنافسون جایی که انسان بیاد برای امر آخرت سبقت بگیره که کی یک ساعت زودتر از نماز فجر بیاد به مسجد قیام بخونه تنافس بر دنیا شده من امروز این موبایل بخرم فردا موبایل دیگه فردا ماشینی دیگه فقط حرص بل بل بل بر مال وزیر آبی هم دیگه زدن و حسادت هم دیگه زدن و تخریب همدیگه این پول از کجا اوورد اون پول از کجا این دزدید اون با تهمت و با دروغ و بهتان هی داریم روز خودمون رو سپری می کنیم و تلحی اکم کما الهت هم و شما را غافل بکنه شما را در غفلت بندازه غفلت از امر آخرت از آخرت بی خبر بشید سر نماز حسن می این آیات سخت در بحث به جهنم میشه ولی شخص عادی نماز سلام السلام علیکم و رحمت الله السلام علیکم و رحمت الله میس میس من چیزی نشد خداوند از ظفیر جهنم از باد جهنم از حمیم جهنم در یاد میکنه اون حمیمی که صورت انسان را میپزونه بعد آخر نماز سلام میده اصلا مثل هیچی نشد باز هم همون آش همون کاسه قال صلی الله علیه و سلم اذا فتحت علیکم فارس و الروم ای قوم انتم اگر فرس روم فتح بشه چه قومی هستید شما قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه نقول كما امرنا الله همون طور که خدا مخصوص هست همون طور که خدا امر کردیم میشوید قال صلى الله عليه وسلم او غیر ذلك شای چیز دیگه باشه نم چی تتنافسون تنافسون ثم تتحاستون ثم تتدابرون ثم تتباغضون تنافس بر امر دنیا سبقت گیری در امر دنیا حسد چرا فلانی داره و من ندارم و فلانی این چیز داره و چرا من ندارم تتهسدون ثم تدارون تدار و پشت به هم دیگه میدید همون طور که خانواده ها از خانواده ها قهرن و ما ها از دو سرفیق قهریم در صورتی که رسول الله سخ سخت برخورد میکنه سه شبانه روز نمیگذرد بر مؤمن دوشنبه و پنجشنبه مگر اینکه نمیگذرد مگر اینکه اگر دو طرف دو شخصی تداور و پشت هم دیگه داشته باشند اعمال اونها پذیرفته نمیشه آخرت شخص به شوخی گرفته به مسخره گرفته اصلا این خیالش نیست که این قهر و این تباغض و این تداور موجب این از که اگر من بمیرم اعمال نیکی ندارم که در اون روز تحویل خدا بدم چون خداوند اعمال من را مردود قرار داده قبول نکرده نپذیرفته به خاطر چی؟ به خاطر بغض و کینه در مقابل یک مؤمن حرمت اون ایمانش اون اللهی که در قلبش است را من حفظ نکردم اگر من گفته خداوند من, من عفو کنم گذاش بکنم اگر من گفته بغض یک مؤمن را نداشته باشم به خاطر چیه؟ به خاطر اون ایمانی که در قلبش داره. بخاطر اون حب اللهی که در قلبش داره چون مؤمنه اسمش مسلمانه اون مسلمان اشتباه میکنه اون مسلمان دروغ میگه اون مسلمان غیبت میکنه اون مسلمان تهمت میزنه همش از امر دنیاست چون در این گناهان افتاده چون غیبت ما کرده دلیلی بر این نیست که من بهش پش بدم من باهاش قهر بکنم من بغزش داشته باشم کینه و بغز بخاطر چی؟ بخاطر این که اون جاه منصفی از من بالاتر داره و یا مالی داره که من ندارم تک تک ماها میانیم اگر خودمون نمیانیم قلبمون صاف و پاکه بریم تو خانواده ها من نگاه بکنیم عمه و خاله و عمو و دایی و بریم نگاه بکنیم شرق و غرب و نگاه بکنیم فرزند از پدرش قهره فرزند از مادرش قهره دیگه این اینقدر بیخورمتی و بالوالد این احسانه را کنار بذاشته و اینکه نه اینکه اصلا مثل اینکه نشدیده حرف خداوند که خداوند میگه جناح الذل من الرحمة. رحیم باش در مقابل پدر و مادرت بالهای رحمت تو فرش کن زیر پاش مثل اینکه خداوند در قرآنش نگفته صدای خودت را بر صدای پدر و مادرت بالا نبر شخص اصلا بی اهمیت در مقابل فرمایشات خداوند فرمایشات رسول الله صلی الله علیه و سلم این قد تبغض این قد تداور این قد قهر این قد حسد این دنیا رو کجا میخوام ببریم توی قبرمون با خودم میخوام ببریم این قد غرور این قد کبر نه شخصیتم غرورم زیر پا بذارم بیاد هر چی خواست به من بگه چرا نمیدونم عصبانی شد رو چرا نمیدونم صداش رو بالا برد و چرا نمیدونم حق منو کرد. ببخش بخشش به تقوا رزقتر مگر رسول نبخشید مگر اهل مکتب بیرورش نکردن شکنجهش ندادن مگر رسول الله نکرد مگر خداوند در قرآن نمیگوید که رسول برای شما الگوز لقد کهنه نکو فی رسول الله اصوه اصوه تنحسنه الگوی نیکیس، اگر از یاد بگیریم رسول الله صحیح حتی با اون یهودی که دشمنش بوده قبل از اینکه وفات بکنن مگر اون بچهی که خاصفوت بکنه نرف بعیادتش یهودیش. بعیادت همسایه به همسایه پشت داده کسی که همسایه‌اش رو نمیشناسه دوستی و نمیدونم اینا دیگه برقرار نیست حالا میاد از جن‌های قیامت رسول الله صلی الله علیه و سلام لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة وحتى يؤتمن الخائن ويخون الأمين قیامت برپا نمیشه تا اینکه فاحش زیاد بشه حالا میخواد اون فاحشه زنا باشه یا هر امر زشت و پس و ننگی فاحشه میخواد باشه زیاد میشه و قطعیه رحم زیاد میشه شخصی دیگه عمشو عموش نمیشناسه اگر خودش هم بخواد ارتباط برقرار بکنه پدر و مادرش نمیذارن اگر پاد گذاشتی دیگه ما رو نمیشناسی و سوء المجاوره سوء همنشینی توی یک خوابگاه هم دشمن همدیگر این هی میگه چرا خاموش کن هی میگه این نمیدونم سر صدا نکن هی مثل اینکه با هم دیگه دشمنن نه اینکه اخوت و برادر همدیگرن دین و نصیحت نصیحتش کنه اشتباه کر. نه با بغض نہ با کینه نہ با اخم عبس وتمنن ان جاءه الاعمى عبوس کرد رو در هم کشید کرد اخ کردن مگه چیز خوبیه مگه خش چیز خوبیه نشانه های قیامت زیاد میشه و حتی یؤتمن القائم تا اینکه خائن امین بشه و اون شخص امین خائن بشه شخصی امانت داره چه امانتش از علم چه امانتش بر دنیا خوئنش میپید میپنداره شخص اعتماد نداره به شخص شخصی که امینه و اون شخصی که امین نیست بهش اعتماد میکنه همش رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرما ان من اشراط الساعه ساعة ان يظهر الفحش والتفحش وسوء الجوار وقطع الارحام ويخون الامين ویأتمن والخائن برهام حدیث حدیث آناسب بود حدیث قابی حدیث عبد الله ابن عمرو بن عاص عمر رضی الله عنه مجمعین در حدیث دیگر حدیث الحزیف داریم که خوردن شنیدید قبلان بحث حس هرج که رسول الله صلی الله علیه وسلم میکه هرجی میقات بعد میگه و یلقبین الناس التناكر فلا يكاد أحد أن يعرف أحدا بين مردم نکارات بشمیات يعني هم دیگر نمیشناسن سؤال از هم دیگر نمیکنه وارد مسجد میشی سرشو متواین انداخ نهی کی مرد کی زنده کی مریض اصلا سوال از همدیگر هم نمیگیرد کی اومد کی نیست رسول الله صلی الله علیه و سلام از خسالش غسلتاش کان یتفقد اصحاب رضی الله عن و علیه الصلاه والسلام تفقد میکرد اگر نماز صبح نماز سلام میداد فلانی کجاست فلانی کجا نیست قصه کعب و هلال و مرار بن ربیع و سنفار علی من الله الرضوان نفر وقتی که در جنگ تبوک با اون عدد ده هزار نفر همراه رسول الله میرن به جهاد میرسن به تبوک سوال میپرسه کعب کجاست سوال از اصحابش میپرسه میدونن کی هست کی نیست ولی الان دیگه کسی از کسی سوال نمیگیره کی مریض هست کی نیست کی به ایادت فلانی بره یا نره پدر و مادرشون تحویل خانه سالمندان دارن دادن شاید سال یک بارم نون سر بهش بزنن چقدر ننگ بر امت اسلام که خانه‌ای به اسم خانه سالمندان داشته باشه این نهایت ننگی هست. این نهایت عاره خداوندی که میاد بعد از حق خودش حق والده را مطرح میکنه انعبدالله و الله این احسانه مرا بپرسید و به والده احسان بکنید احسان بران تحویل بدن خانه سالمندان که دیگه سر بهشون نزنه اینا از نشانه های قیامتی هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم که رسول الله صلی الله علیه وسلم مرا میکنه و بهمون همون حشدار میده. بای بر آن کسی که اینها را به شوخی بگیرد و عبرت و درس از این احادیث رسول الله صلی الله علیه و وسلم نگیرد. آخرین نشانه قیامتی که امروز بر نظر گرفتم بحث بخلی که همراه فحش در بعضی از احادیث بخلی آمده. رسول الله صلی الله علیه و وسلم میفرماید: والذي نفس محمد بيده قسم به آنکه جان محمد در دست اوس لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والبخل. قیامت برپا با نمیشه تا اینکه فاحشه و بخل زیاد بشه. در حدیث ابن مسعود و مدن رسول الله صلیم اقتربت الساعة و لا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا ولا لا يزدادون من الله إلا بعدا قیامت نزیک شده مردم حریص بر دنیا شدن روز روز دارن حریصتر میشن از خداون دارن دورتر میشن وای بر اون شخصی که از خدا غافل و از خدا دور بشه و در حدیث دیگر از معاویه داریم لا يزداد الامر إلا شده ولا يزداد الناس إلا شحا ولا تقوم الساعه إلا على شرار الناس مردم روز بروس خسیستر میشن بخیلتر میشن و قیامت برپا نمیشه مگر بر شرورترین انسانها انسانهای شروری نباشیم که اگر میخواهیم قیامت بر ما برپا نباشه ما در زمان حضور یعوج و ماجوج و دجال نباشیم باید این خصلت های خصلت های بد و ننگ را از خودمون برداریم باید باش مبارزه بکنیم بدونیم اگر امر معروف نهی منکر نکردیم اگر نگفتیم بدانیم و نگیم مبارزه با فحشا و منکر نشه دعوت به نشه بدونید که ما ملعونیم لعن الذين كفروا ممن اسرائیل لعن الذين كفروا بن اسرائیل بعد آخرش میاد چی میگه در آیه بعدش كانوا لا عن منکر فعلو لبئس ما كانوا يفعلون لعنت شدن چون نهی از منکر نمیکردند ملعونن چون امر معروف نهی منکر نمیکردند اگر می خواهیم قیامت بر ما برپا نشه باید با این, با این مبارزه بشه با این خسلت های و زش و زننده خسلت هایی که خداون بغزش داره چه فرقی بین بخله و شحه شح حرسه بر دنیا برای جمعاوریشه که فقط میخواد جمع بکنه و هیچی از دست خودش بیرون نمیده بخل نتیجه شح سمره شح خصاصت یا خصیصیت اینه که شخص به دست آورده آره دیگه زورش میاد که از اون مالی که خداوند در اختیارش قرار داده احساس مالکیت میکنه دیگه در راه خدا نمیده انفاق نمیکنه این از خصلت های زشتی هست که رسول الله صلی الله علیه و آله میگه اشتنب السبع الموبقات قیل یا رسول ماهی قال الشرك بالله والشح وقتل النفس و آخر حدیث بر حذر باشید از اون موبقات از اون گناهان هلاک کننده بعد از شرک رسول الله صلی الله و خصیصیت را بیان می کنید صلی اللہ علیه و سلم صلاح اول هذه الامه قال صلی الله علیه و سلم صلاح هذیه الامه بالزهد والیقین و یهلک آخرها بالبخل والعمل صلاح و نیکیه ابتدای این امت با زهد و ورع و یقین بود و آخر امت حلاک میشن با بخیلی و تمع زیاد و امید امیدن همیشه در رجا هستن همیشه بر سر زبانشون خداوند غفور و رحیمه عمل نمی ولی امیدوارن زحمت نمی کشن ولی امیدوارن خدا میبخشه خداوند میگذرد خداوند رحیمه قلب صاف باشه عمل رها کردن بدنیم الا ان فی القلب مضه اذا صلحت صلح الجسد بدن انسان تهی گوشتی است اگر اصلاح بشه اعمال درست میشه مفهومش این که اگر اعمال درست نشوده چون لازمه اصلاح قلب درست شدن قلب این که ایمان درش رخ نکرده علامتش اینه که اعمالش صالحه اعمالت فاسد شد بدون که قلب تنوز اصلاح نشده شر ما فی رجل شحون حاله و جبن خاله بدترین چیز اینه که شخص شحیح و خسیس باشه و بزدل باشه و در مقابل بزدلیش قلبی سست و قلبی ترسو داشته باشه بترسه همیشه میخواد بده در راه خدا میگه شاید من فقیر بشم فقط هم غمش دنیاست. هم غممون آخرت باشه. حب دنیا سبب نشه از خدا غافل بشیم. ما برای آخرت آفریده شدیم. نه برای این دنیا. این دنیا مزرعه است. آنچه بیکاریم خوب و پسند دیده باشه. و صلی الله علی محمد و علی آل محمد.